لا لم تانس بدنيانا ولم تسر خلف طيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستنطر الذل اصغاءا واذعانا لا لم تانس بدنيانا بسم الله الرحمن الرحيم أنك انكناميتو بهترن سراغاز بيناميتو نامكيكونم باز به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید ستایش و سپاس خداوندی عالمیان راست آن ذاتی که آفری زمین و آسمان است ذاتی که انسان را بی آفرید و بر همه مخلوقاتش برتری داد خدایا سپاس برای توست که دین را شرع نمودی و سپاس برای توست که فرمان دادی و سپاس برای توست که آسان گردانی دی و نوشت نمودی درود و سلام فراوان نصار پیام رحمت و هدایت و نور برای جهانیان آنکه بشریت را از تاریکی های کفر و شرک و بود پرستی بروشنی دین مقدس اسلام رهنمون فرمود و بر اهل بیت او که مشعله های هدایت و روشنی بخش تاریکی بودند و نیز بر یاران پاک او که حامل وحی سماوی بودند و درود بر هر آن کس که تا قیامت بر منهج آنها گام برمیدارد دارد. برادران و مجاهید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز جمعه، تاریخ 22 رمزان متابق 12 اگست. رادیوی صدای الله سیومین برنامه هفته زبانی دری را خدمت شما تقدیم می نماید. خداوند زلجلال را سپاس گذاریم، که با ما فرصت را مهیا نمود تا یک بار دیگر از طریق امواج صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله همکاری عزیز به همینطور میراییم به طرف داشته های برنامه امروزی موضوعاتی که در برنامه امروزی ما گنجایش یافته قرار زیل است سلسله اندرزها مصاحبه با یک برادر مجاهد در سلسله دروست باید یکی از درزهای مولوی صاحب مسلم گوش فرامه دیهیم در بخش ما رو آردی هفته موضوع منتخب ما آدابی صحبت و گفت و گفت و گفت و همین طور تحولاتی یک هفته سلسله اندرس ها یکی را که در بند میبینی مخند مبادا که در افتی به بند مپندار اگر صفله قارون شود تبع لیمش دیگرگون شود هنر باید و فضل و دین و کمال که گاه آید گه رود جاه و مال کنونت که چشم است اشکی ببار زبان در دهان است ازری بیار نپی وست است باشد روان در بدن نه همواره گردد زبان در دیهان زیدانندگان بشنو امروز قول که فردا نکیرت بپرسد به هول. غنیمت شمار این گرامی نفس که بیمور قیمت ندارد قفص. مکن عمر ضایی به افسوس و حیف که فرصت عزیز است و الوقت صیف کنون وقت تخمه است اگر پروری گر امیدواری که خیرمن بری. به شهر قیامت مرو تنگ دست که وجه ندارد به حسرت نشست. گرد چشم عقل است تدبیر گور کنون که چشمت نخورده است مور تو را شرم ناید زیمردی خیش که باشد زنان را قبول از تو بیش فیغان از بدیها که در نفس ماست که ترسم شود زن ابلیس راست کجا سر برارین از این عار و ننگ که با او بسلحیم و با حق به جنگ اکنون نوبت را به بخش مصاحبه ها می دهیم. که البته در جریان هفته گذشته رادیوی صدای جندالله مصاحبه را انجام داده با یک برادر مجاهید که اینک خلاصه آن به خدمت شما تقدیم می گردد برادر محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو به برنامه ما خوش آمدید و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو Darkhadamina Khadamina Khus, me shah khudra bashinavandakoni aziziradioisi sadoi jundulla marifiko Muhammad Anas, niakten az mujaidini uluswali dar Sufi ulayt samangon, ki dar jangi dar jamalak, dar amujamaoistirakgersti mazawal ta baakhirah. Va ber nami ma khushamadit. Tshakurashima. Sawaali doo mazik harorast, harori ki malumaz chen Jani, der maa i šabani salli 1461 ni kemari. Der viljaty šimal, ba xusos der villet samangon mujahidin dastardhai zyadi dastan. Käzin jumla yaki ham ba xupay vastani jang, mi mujahidin wa nirhai sallibi wa muzdranushan Awal bari. مujahidin در این جریاب پر که در به ها چهار روزه سریش مو عملیات داره. باز به امیر محمد رحیمی که رهبر جنگ رهبری میکه و رهبری موجایدین بود. توان ها با موجایدین مشوره کردند که ما شخصی میکنیم. باز بالاخره لایکره مشوره آمیشید که چهار روز در مقابل می جل از نامی جنگیم. بسته آن تیالل الله جلاله جلاله او. به لایکره قوام دهزار طرف عملات داشتن در هر روز حملاتی زمینی و حملاتی آسمانی داشتن و حملاتشان که در نتیجه برایشان نداشت جز شکست و تلفات افرادشان بلاخره چهار روز عملات از اینها دوام کرد به چهار روز انوز هم در سنگراهشان بودند و آنها پس نرفتن نظر به معلوماتی که ما پسان کردیم به نام دکتر زیودین رئیس شورای ولایتی ولایت سمنگان پس در اونجا جا با جا کد در داده رفتند جنگ در هشت روز ادامه پیدا کرد. دیگه تجهزات مجایدین به سفر پایین شد بلاخره به روز هشت مونا داخلی دری جمالک شد و امیر محمد رهنما شهید شد و نوتن از اندالا اثر شد دیگه سی تن از اندالا باقی ماندن خود خودکشیدن دری جنگ هشت روزه تعداد دشمن به چه حد میرسید؟ تعداد دشمن به چهار هزار نفر میرسید Duxman ho muta xakilja zharbeki ho, urdu, wa xari jiho, budan. Ja da iġan, te dadimuj johdin baxi hat mira sida. Te dadimuj johdin, deri ġang baxi izda, ne far mira sida, pa jne De Jang یو نصره تلایہی به مجاهدوار شða بلې نصره تلایہی budki کې هشت نفر در مقابل 4000 نفر 8 روز جنگیدان تقریبا 340 نفر د دشمن مړدار شða او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 قسمی که Griftin معلومات گرفتیم پسان پس از اختتام جنگ بعضی‌ها به 30 mardum, می‌گفتند mardum, تن هم می‌گفتند اما قسم روبروی مردم دیگه مردم کسانی که در آن صحنه بودند از بلند تقریبا 8 روز ادامه داشت 8 روز ادامه داشت ده 8 روز جنگ کدام کرامات به مجاهدین دیده شد چه کرامات دیدند این جنگ دهارش بود به فضل خدا نه از زمین و آسمان امولات داشتند هیچ مرمی از اون به نزدیکی مجاهدین هم مصابت نکرده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 در جنگ بودد احمد خان سمنگانی کشتشده کشتشدان احمد خان سمنگانی چی تحصیلات بر مجاهدین و به دولت وارد کرد؟ کشتشدان احمد خان سمنگانی دولت را ضعیف کرده و روحیه مجاهدین را تقویت نموده در مورد شخصیت احمد خان شما معلومات دارید؟ احمد خان سمنگانی یک انسان ظالم و آدم کشت از جمله تفنگ سالارای سابقه بود Kuolemaa ja väkivallan jälkeen on ollut paljon vähemmän. Mutta tässä on vielä paljon kysymyksiä. Onko tässä olemassa jäljellä olevia väkivallan jälkiä? Onko tässä olemassa jäljellä olevia väkivallan jälkiä? Onko tässä olemassa jäljellä olevia väkivallan jälkiä? یرانم واستو ها صلیبیو منطقه در رفتن مجاهدین وجود داره در اینجا شما پیامتان به مجاهدها و به مسلمانان چی است ما برای مجاهدین و مسلمانان نميوست که از از دل و جان چنان که پیامبر صلی الله و آله و اصحاب کرام در مقابله آنها مقاومت کردن و دین را به اینجا به سرزمین های دور رساندن تا آخرین لحظه خونیشان باید مقاومت داشته باشند صبر و حوصله داشته باشند و سنگر را نکنند در on اونها بجنگند و ان شاء الله تعالی خداوند حق را همیشه بر بالای باطل فیروز گرداند است و ان شاء الله مجاهدین را هم خداوند اگر چه به زمان دیر باشد هم فیروز میگرداند پیام و amrui kudavandraa, bajobi ja oran. Voi donjak, دنیا bakoi, kidam chinadora. Ja mutija kudavara sulais bochan. Voi sulais vaan bardori, bikunan vaan darmohavillon ja bijangan bidor se on. Se se, kuka se suma. Dejang suma, ah, oli deakidorin, kias niiroi kvaraditsi kardarkuista. Niiroi kvaraditsi, ah, oli deakidorin, dar shodi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 میلیون‌ها yup. on هيچ یک مسلمان خود را میگیرند بعد وظیفه اسلامی را اجرا بکنند و کمک بر دشمن را اختتام بدهند و بر صفوف همیشه باید بیدار باشند و دعا کنند و در پیش خداوند زاری و تضرع کنند مجاهدین خداوند دعایشان را حتما قبول میکنند و در این شبها شب ليله القدر هم در اواخر رمضان نظر به احادیث رسول الله صلی الله علیه و که وجود دارد که دعا هجرت و نمی‌شود همیشه دست به با دعا باشند و متقی خداوند باشند انشاءالله خداوند فیروزی و نصرت را به زوترین وقت می آورد تشکر از شما که به برنامه اشتراک کردید جزاكم الله حسنا الجزاء غالتیدا <تصفيق> غالتیدا در خاک و خون شهیدان گل گل شد افغانستان الله اکبر الله اکبر غالتیدا غالتیدا در خاک و خون شهیدان گل گل شد افغانستان الله اکبر الله اکبر غالتیدا غالتیدا در خاک <ip presents> Beada dusha he done gulloy Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasida Rasida بعدد شهيدان قلها يسرخي قرآن الله أكبر الله أكبر هم سنجر مش سنجر يومي من را قل من را الله أكبر الله أكبر هم سنجر Bishnapayam Imanro, Girin tikhomi man ro, Allah Akbar, Allahu Akbar, Ham Sanghar, Am Sanghar, Visnal Pyami Manro, Girinti Komi Man Raw, Allu Akbar, Allahu Akbar, Ali. سرمدين بجبهه بحري خداي الله اكبر الله أكبر على الليوار ومروات بحري خداي الله اكبر الله اكبر على الليوار Sarveri embaga ba ri khudai akta Allahu Akbar Allahu Akbar Mejooshad Mejoosh Khuni shaheed dar sangar chulala ahmar Allahu Akbar Allahu Akbar Mejooshad Mejoosh ید سنگل جولار اح الله و اکبر الله اکبرمه جو جونیشید سنگل جولار احعمل الله و اکبر الله و اکبر, اکبر اوکنون نوبت را به مولسی مسلم میدیم که با وخان خود شما را مستفید میسازد الحمد لله واحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أموات. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى وأوفوا بأهدى الله إذا عاهدتم. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مختن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أنا به رأي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق صلاس إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف وإذا أت من رقانا صدق الله المولى النظيم وصدق رسوله النبي الكريم Vanhemmat ovat tällaisia. He ovat niin kovia, että he ovat niin kovia, että he ovat niin ja että he ovat niin kovia, että he ovat niin الله الله buden. Baya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahd kardadan baya alladheena Muhammadan ala al ma baqayna abada ma kasana hasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahad wa payman basim bar jihad migam madami ma dunia dar duniya ma baqi asim madami ke zinda خون درگاه های ما جریان دارد ما جهاد خدا را ادامه می دهیم بی بیعت کرده بودند اصحاب بن اکبر رضی الله تعالی عنہ یک تا سوال کرد شما با کدام چیز بیعت کردین با رسول خدا صلی الله علیه و سلم سلام بن اکبر رضی Mei fami, umri balatas. Agar zundasti ja halasna meja. Musiki, namoz, umri balatas. Djihadam, agar parzi, kifa ibuda, moja, jakti dal musulmona, vahtiki, dal mubalaza, vahtiki, sunam, dal muhalaburi, kuformi rawa, tazimejä digaronsakot meja. Vahtiki, parzain suhde, ba manziri, namoz meja. Vahtiki, boalan suhde, tu mukalahastu. Imro, djihadam, یا کاربر با پیش شود این بدون عذر شرعی جهاد از گردان ساخت نمیشه و منزله نماز فرزند شده گیسان دهجه که وقتی که بیعت کردین به شهادت ما بیعت کردگیسیم باید به بیعت خدا ما و شما پورا کنیم بیعت خود وفا کنیم اگر احد خود را علی از بالله بشکنیم جهاد خود را ترک کرده برون که رسول اکرم صلی الله علیه هفت گنایی است مهلک است Insaana der dunya akhirat halak mäikuna der dunya zillat raswai der akhiratam zillat raswai Dar jahana mäbera ykkish ynimi tark jihadas as Sangar jihada iänfar migrize jihada mukammal tark mäikuna u kooda baharakta adnoktegista geaam edin azi kauter Allah tabarawatalla asabi ikram raziyshut razi Allah u anhumaraziu anhu Allah tabar asabi ikram raziyshut ja naasalla tullaan raasi sjudan. Alla tullaan rachanumma mifarmaajat. Minna minina rijalun. Sada kuu maa aha tulla rijali. Ja minä huuman Tazir, nabahu, minä huuman jantazir. Azunimumina minomega mardonia sän. Rijal mardonikomilla sän. Ja yhdi paimoni kiballa ba bastabuden. Ja ba yhdi paimoni hudmega rossikardan. Ja yhdi hudapurakardan. Ja Baas on mega, adu paimon, adu pura karda, job shadata, nuus karda, asdun joyufani, raftan. Vamien tazir, baas on mega, montazir, pura karda, adu paimon, montazir, shadata, tese. Vammaa bada lutabdila, unaba mazzirimuna, pykin mega, dal adu paimon, adu, dar vaade, hesh tahirat nayaordan. Tahirin hajotus on, tahirin raamakus indegis on baadihot, unokaajama ostu varba, kiimondan. بس براداران مسلمان اگر مؤمنی که به منظری صحابه مؤمن نباشد او میگه منافق است الله تعالی در سوری بقره میفرماید آمینو که ما آمنالاست شما ایمان بیارد به منظری که صحابه ایمان آوردگیست مفصیلین اکرام ناشتن میکنه که ایمان به منظری ایمان صحابه نباشد او نفاق است میگن پس صحابه در عهد و پیمان خود هموت تو استوار محکم بودن ما و شما هم نقش قدم صحابه را تعقیب کردن دای راهی صاحب راهی پیغمبر صلی الله علیه و آله برای خود انتخاب نمدگیسیم بی عهد خود ما و شما استوار محکم باقی بمانیم پورا کردن وفا به عهد این واجب است الله تبارک و تعالی در این آیه می Pas muomin muslimon amurok, mutta me jää harkeikin moumin, muomin, bazabon mege da kalvaamamurok mege. Voit chizi ki bazabon mega ura amal meikuna. Yne amalo ish bomro, kau lushi as muafikas. Yne muomin saadak mege. Kas ki bazabon mega ura amal ne meikuna. Yi kustat muafikas ku. bazabon mege, da amal neis. Ja chizi ki bazabon mege, da kalvi shneis. Muomin muslimon amis ki kalvi, is, kardoor is, raftoor is, hama yakkusun mei bojaan. Allah ta' la deriyat mi farmayad bi ahdillai da Pasi, ee wa hatum. mega ba adi paimonikiballa Allah ba se Ira bandin. ahat i wadjibas. I amar uujubas. Allah ta' baro ja tada deriyat mi اے مومن مسلمان شما میگه وفا کنین به عهد پیمانتان در یاد الله تعالی فرماید aika فلذین امر او کسانی کی معنی وردا گسین لمتا تقولون ما تفعلون شما چرا میگویید آنچه را که شما نمی‌کنید مومن مسلمان همین مباش چیزی که با زبان میگویید عمل میکنه چیزی که در Jahoudun asana, vaan baze basi, kariboi, saan, paitsi että on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on paljon, on Ona me kertin, hyvää kokeilua. Pyyntö on pyyntö, pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen Mardum, Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on aikuisen aikaa. Pyyntö on دائره رسول الله میایم حال ما خود ما یک کلان راهبر هست ها مردم دوستای ما رو بوسن میکنن میمان میتن چپان میتا پیسہ میتا راهبر است گفته واسه که ایمان میاره همه مردم از ما دور میشن به خاطر عزت دنیا به خاطر پائسه دنیا اونها از ایمان Ayşma, merdömme bekarneik bayiwan davat miykonen, amar Mikunin. Khuda faramish kerdegis. Darhal kitab Taurat ayşma miykoonen. Sadaqatı rusalatı Rasulü Salam. sallallahu aleyhisselam hakkaniyatı Peygamber aakhir zaman dar Taurat as. Oğetar ayşma khan davisin ayşma mi talwat miykonen. Lakom Khuda faramish kerdegisin. Affallah taqinallah utanam davat miykonen. Khuduş bekarneik amarla miykonen. Omiyga hamakates. جهل است دین صرف دعوه نیست دین صرف ادعا نیست دین هم ادعا هست, هم دعوه هست هم عمل است از خطر الله تعالی می ای کسانی که ایمان آورده اید چرا می گوید آنچرا که شما نمی کنید. چیزی را گفتید باید عمل کنید کبور و مختلین در الله انتقول مال تفالون بزرگس است می از روی گناه در نزد الله تعالی که بگوید آنچرا که شما نمی کنید. پس او اهدی که او وعده ای که با امیر شما دادین در صفحه جهاد آمدین وعده نمودین که ما تا بقای حیات خود تا رمق حیات خود تا زندگی خود ما جهاد ادامه میتیم از اطاعت شما بیرون نمیشیم همیشه در خدمت شما هستیم باید به این صادق باقی بمانیم و یه مستحکم باقی بمانیم کسانی که بگن چیزی که بازبان میگن میگه او را عمل نمیکنه کنه عهد میکنه عدشه میشنه. یہ میگا درنازی اللہ تعالی بزرگ ترین گناہ اس از کہ دیگر بزرگ تر گناہ نہیں با رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یہ حدیث مبارکہ کہ حضور ان قرات نہ بدن ابی ہریرہ رضی اللہ Edda hattessa käyvä, vahti gap missä on megi durug meikän. Şe joku megi, u hakekatan nazaran, u akyat nazaran. Mutaikku u akiin eiä, u ra durug meikän. Vaija varda aklapa, vahti, ki varda meikun eikliä koramiekon mutta, bas xilaf meikuna. Vaija tu mina kana, vahti, ki Bazu kapora, se mua bahaar mejäjäjääni. Bazu rozo, sydarbain ja mujahidin, asi kalan mejäjääjääni. I kalon amonatas. Kazuki rozo, jä mujahidin, la dar pieši diger mardukku mujahidin ja fshammekuna. Joa, pieši dhishman ja Yem i kalon khyonatas. Jääm kussatat ja monafekas. aht kidodin bahu, mahkam, wafadarba, kibumanen. Baji wada kidodin, baji xilaf nakunen. Kazimnei, monafekin maa صحابنا شب وقت کی ای درس های که مثلا به شما داده شد درس های نظامی درس های فرهنگی عقیدوی داده شد این کلان امانت است امانت است طرف امیر اجازه است که در جای شما استعمال کنید وقتی که حق کاپل ده اجازه Unohda harkattaan, vaikka oleti kutsuttu, unohda, että sinun on tehtävä tämä. Muistakaa, että meidän täällä meidän on joka kerta, että meidän on joka kerta, että meidän on joka kerta, että meidän on joka kerta, että joka kerta, että meidän در اینجا کس را کوم در تربیت میکنیم باید سه چیزه مکمل و یاد داشته باشه و ده سه چیز Tackle باشه مهارت پیدا کنه یکی دعوت خوب دای باشه حقیقتا را شنیده مردم را دعوت کنه برادرای خود دعوت کنه این تو نیست که مثلا قولتونه افشا نکنین در بین رافقا حمدوالله دار صادق مسلمان اسورا دعوت کے حق تک بیان گفت دوم جنگ سوم امیس تقوا انمیس سے چیز برای ما و شما خوب بود باشه خوب تقوا داشته باشیم خوب مسائل نظامی را یاد داشته باشیم خوب عقیده‌ای باشیم نصرت الله تعالی میاد برای طایفه منصوره میگه سه خصلت میباشد nusrat Dar tamamun umur az Allah takwa mey kuna, badat, cii masaili jihad, iam takwaadam dar takwa da khala zene, ya ikfar zo Khuda ramali mey kuna, takwa amre gutamijun hama aqam Khuda dar amal piyadekunye. Astanam manhiyat Allah dar astanam Muharramat cii kuna, istuna Paris kuna, ramen kamen takwa kuna, mega duum amre bilmaruf ney anil mukar darabuna, dar bayne Basuja ha, basuja din, tavi, ha, masoili dinidävät vekuna. Asmon karma, tavi, vekuna, broda lauraja, hoida Ja jos on kestää, jos on mies, me voimme sanoa, että on ailem, me on ailem, me voimme sanoa, ailem, як تایفی مسلمانه بودا بواسطه میگه اونارا الله تعالی نصرت میکنه و کامیاب میشن باز روازا را در پیشروی دیگه مردمی که غیر مجاهید است شما میفهمید اگر افشا کنیم او خیارت میکنه muslim, نکنید دیگه همین وعده تا مستحکم امام مرداکی کہ امس این قصهت برای ازو بود واجب یاب بزنه دروغ میگه وعده میکنه خلاف میکنه امانت که در پیش از گذاشته میشه خیانت میکنه اگرچه میگه روزه میگیره و نماز میخونه و گمان میکنه که مسلمان است او منافق است میگه خودش گمان میکنه که من مسلمان هستم لکن منافق است میگه الله تعالی albatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam guft ala, arba man kunta fihi khara munafiqan khalisan mega char khislat ast har kasi ki daralay char khislat boda bashad yani char khislat dar jan har kas boda bashad u munafiq khalis ast khalis munafiq ast wa man kanat fihi khislatan minhun kanat fihi khislatan min al-nifaq kasarak boda bashad dar ami mega me bashad mega yak khislat al-nifaq baray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 dar raydin baray manfaat-e dunyari smal nakazi e khiyanat ast ya in ke urdi mirli ba kafir khidmat kalon kataba vafte ke ghat migunamaga doroq va hada ke ahd mikunamaga va haddash ke چمه کو نا دا دشمن می کنه با مسلمان وقت کی همدای یک کس اند دشمنی میکنه یعنی برای مسلمان دشمن کافر نمی باشه مسلمان هیچ وقت دشمن مسلمان نمی باشه اگر یک نوع خصومت شخصی پیدا شود بعد پیش از ذو چه روز بلند میگه یک مسلمان کسی ترک میکنه را از گبر میزنن سلام نمیتن این گناه کبیر است از این کدر کلانترین گناه نیستن باست مسلمان برادر مسلمان میباشر میفهمم همده مسلمان یک نفر شبری نمی کنه. منافق وقتی که که که قرش در حال دو تشنام میتا؟ آبرو برو ناموس عزیزه بازبان میاد درو میته دوام میذنه اخصات النفا قرار از اخصات نفاق الله تعالی ما شما راه حفاظت بفرماید از چیزا ما شما پرهیز کنیم به این عهد و حد باقی بمانیم قانعقدر اکتفا میکنید الله تعالی چی گفته میشنیدیم اولن برای من که ما وعده داده گشت برای این عهد کرده اسم میفهم بیعت کرده اسم شما که باید کرده برای جهان بیعت شما الله تعالی ما را ثابت قدم و مستحکم بیداره الله تعالی از جمله مؤمنان صادق مؤمنان مخلص ما شما را به شمار ببره الله تعالی از صفات منافق ما شما را حفاظت بفرماید اور bro برادران و خواهران کہ در صف جہاد اس پر راہ استقامت در بیعت شون نصیب فرمات mitä on Us subh ki tajalli se pahle ay ahl-e Haram tau baakar lo us subh ki tajalli se pahle jab gharb se suraj niklega darwaze bandh ho jaenge jab gharb se suraj niklega darwaze bandh ho jaenge Allah ke liye laddne vale Allah ki zami par chaenge हम तुम ही समेटेंगे जाके जो कुछ भी गवाएंगे यहां पे हम तुम ही समेटेंगे जाके जो कुछ भी गवाएंगे आखिर को वहीं तो जाएंगे फिर मालिक के जहां से बखुली क्या आखिर को वहीं तो जाएंगे अल्लाह के लिए लड़ने वाले अल्लाह की जमीन पर छाएंगे जब आठों दर जाएंगे जन्नत को सजाया जाएगा जब आठों दर जाएंगे जन्नत को सजाया जाएगा kis shaan se siddique akbar har dar se bulaye jayenge kis shaan se siddique atbar har se bulaye jayenge allah ke liye ladne wale allah ki zameen par chhayenge takmeel jihad e haq ke liye jab hazrat e isa allah ke liye ladne wale Allah ki zameen par chhayenge Allah ke liye Allah مرواريدي حفته قبل فنائه البخل في <تصفيق> يزيد بعيش لكل غد در بخش مرواردی هفته خوش آمدید چون که ماه ماهی رمزان است لذا موضوعی را زیر عنوان آداب صحبت و گفتگو برگزیدیم که وابستگی به این ماه دارد بسم الله الرحمن الرحیم آداب صحبت و گفتگو انسان مسلمان لازم است که زبانش را حفظ نماید به دلیل آنچه که امام احمد رحمه الله روایت کرده Kipayombar sallallahu alayhi wa sallam farmuda ast. Innar Rajula layata kellam ubil Kalimati yulhiku biha Jula sah Yahwi biham min abba adamin asuraya. Yane, Hamono in son Sukhani Meguyat, ki ba wasila yonhamnushino naxromi kandonat, ki ura az fosila jidur ta' ras-suraya bapo yin khahad Ya suhani khair biguya sa kit bosh. بدلایل حدیثی که ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده و است الله عليه و فرمود من کان بالله واليوم الاخر فلیقل خیرا اولیصمت یعنی هر کس خدا و روز آخرت ایمان و یا ساکت خوب و پسندیده یکی از أبواب صدقة أبو هريرة رضي الله عنه كيبا ينبري خدا الله عليه وسلم قفتا است كل سلام من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة يعني هالروز كي خرشيد در انطلع ميكونات بر هالمفصلة از اعزاي بدن مرد صدقية لازم است که بپردازند با عدالت رفتار کردن میانی نفر صدقه است کسی را بر پشت الاغ خود میگذارد و یا بار به با آنجا بجا میکند صدقه است و سخن خوب و پسندیده صدقه است بلکه سخن خوب شخص را از آتش دوزخ دور می کند عدی ابن حاتم رضی الله عنه روایت میکند و میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از آتش دوزخ سخن به میان آورد که بلا فاصله روی خود را از آن برگرداند و از آن به خدا پناه برد دوباره از آن سخن گفت و روی خود را برگرداند و به خدا پناه برد سپس گفت از آتش دوزه خود را برهانید اگرچه با تکیه از خرما باشد و اگر کسی خرما نداشت با گفتن یک سخن خوب خود را برهاند باید کوشی تا خود و دیگران را به کم سخن گفتن ترغیب کرد چون زیاد سخن گفتن باعث وارد شدن به گناه می شود به دلیل قول پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام که می فرماید و ان ابغضكم الی و ابعدكم منی مجلس یوم القیامه یعنی مبغضترین شما نزد من و دورترین شما از من در روز قیامت یا و گویان و بهود گویان هستند باید از غیبت حذر کرد چون خداوند جل جلاله میفرماید و لا یغتب بعضکم و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند غیبت کردن در شش مورد جایز است اول مظلوم می خواهد نزد حاکم و قاضی تظلم خواهی کند دوم وقتی بخواهد برای تغییر منکر کمک بگیرد سوم هنگام استفتا از مجتهد و بگوید فلانی این چنین بر من ظلم کرده است چهارم حشدار به مسلمانان که وارد شر و فتنه نشوند و آنان را نصیحت کند به شرطی که هدفش نصیحت باشد پنجم اگر شخص فسق و بدعت را به طور علنی انجام دهد ششم برای شناختن و توصیف کردن مانند اینکه کسی معروف به اوصاف زیر باشد کور کچل ولی اگر منظور تنقیص او باشد حرام است مواردی که به هنگام غیبت مباح لازم است مراعات شوند. اول در نیت اخلاص خدا را داشتن. دوم تا آنجا که ممکن است از شخص معین نام نبرد. سوم، باید به برادر دینی تذکر داد که فقط سخنی مباح را بگوید. چهارم باید یقین داشته باشد که این کار او باعثی مفسده بزرگتر نگردد. اسبابی که باعث غیبت می شوند. اول به خاطر شفا از خشم و کینه از طرف دارد و این گفتاری پیامبر صلی الله عليه و salam را یاد می آورد که فرماید من که و مغایضن و هو قادر على اي نفذه دعاه الله عز و جل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور ما شاء یعنی هر خشم خود را فرو خورد در حالی که قادر بر انجام آن خداوند جل جلاله او را در روز قیامت جلوی همه مخلوقات صدا می زند و او را میان حوریان بهشت اختیار می کند هر قدر که بخواهد. دوم تا اینکه از جمع عقیب نیافتد و با دوستان و همکشان خود هم صدا گردد و این کار حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را یاد می آورد که می فرماید و من التمس رضان ناسی بس الله و کله الله إلى الناس یعنی هر کس رضایت مردم را با خشم خدا به دست بیاورد، خداوند او را به مردم واگذار می کند. سووم، جبران کمبودی های خیش با تنقیص دیگران و علاج آن این است که باید دانست. آنچین از خدا میباشد باشد بهتر و ماندگارتر است. چهارم، برای شوخی و هزل گفتند ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم می میفرماید: ویلو لیلذی یحدثو فیکذیب Lyul heikabi hilkaum, wai lu lu lu lu lu lu wai barkaseki suhani drurmegujat, tomardumroa bichantonat, wai baru, wai baru. Panjum, hasad, wali pa jombarikhodasulla hualihi wasallamme farmojat. La jadjutamirani fi kalbi abdin al-imenu al-hasad. Janne, dal kalbi ensan, imon whasad boham jam on nameshawand. Shashum. بکسی چیزی را نسبت می‌دهد تا خود را از آن تبرئه کند هفتم بیکاری زیاد هشتم خود را به بزرگان و صاحب منصبان نزدیک کردن مواردی که گمان نمی‌برد غیبت باشند ولی غیبت هستند اول کسی را غیبت می‌کند و وقتی بر او اعتراض می‌شود که غیبت است می‌گوید من این سخن را نزد خودش هم می‌گویم دوم کسی در میانی مردم هنگام ذکر نام کسی میگوید با خدا پناه میبرم از بیحیایی بعضیها و یا خدا از سر تقصیر فلانی بگذرد. سوم، اینکه بگوید فلانی مبتلا به این است. چهارم، به توجهی و تساهل در غیبتی گناهگاران باید از سخنچینی حذر کرد. چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید: لا خلو الجنة قتات سخنچین به بهش داخل نمی شود. کسی که نزدی او غیبت کرده می شود باید موارد زیر را حلق آوازی خود کند اول نباید حرف نمام را باور کند و نباید آن را تصدیق کند دوم باید او را نصیحت کند و از چینی نعمل نهی کند سوون باید او را به خاطر خدا مبغوظ بدارد چون او نزد خداوند مبغوظ می باشد چهارون نباید نسبت به برادر غایبش سوء ازن داشته باشد پنجم، نباید غیبت او باعث شود که در حال و اوضاع طرف تجسس و جستجو نماید ششم نباید به خود اجازه دهد که حرف نمام را بازگوید و نباید بگوید فلانی این چنین گفته است چون با انکار خودش هم نمام می شود نباید هر چیزی را که شنید بازگوید چون پیامبر خدا صلی الله علیه و می فرماید کفا بالمرء اثما ان حدث بكل ما سمع یعنی برای گنهگار بودن شخص همین کافی است که هر چیزی را شنید بازگوید. باید از دروغ حذر و پرهیز کرد. خداوند جل جلالهو میگوید یا ایوها الذين آمنوا اتقوا الله و مع معا الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. دروغ گفتن در سه مورد جایز است. اول برای اصلاح میانی مردم. دوم در جنگ sawam waqt-e mard ba zanash sohbat kunad wa ya zan ba shauharash sokhan bigoyad wa dalil an hadisi payambar-e alaihi wa sallam ast ki la a'udduhu kadiba ar-rajul yuslihu bayna an-nas yaqul al-qawl wa bihi illa al-islah war-rajul yaqul fil harb war-rajul yuhaddith ra'atahu wal-mar'atu tuhaddith zawjaha yani durugh ba hisab nam ayawaram ان کی کسی به خاطر اصلاح بین مردم دروغ بگوید و را فقط به خاطر اصلاح بگوید و کسی که در جنگ چیزی بگوید و مردی که در باره زنش و یا زنی که در باره همسرش چیزی بگوید اشکاله ندارد نباید فحاش و بد دهن بود و نباید سخن آزار دهنده گفت به دلیل این روایت که میگوید بیانبر خدا صلی الله علیه وسلم فحاش و بد سخن نبوده است کسی که جدل را رها می کند اگرچه حق با او باشد برتر است پیانبر خدا صلی الله علیه وسلم می فرماید انا زعیم بیتین فی ربض الجنه لمن ترك المراء و این که یعنی کسی که جدل را ترک کند با اینکه حق با اوست من در وسط بهشت خانه را برای او ضمانت می کنم از خنداندن مردم بدروغ نهی شده است بادر إلى قول بابن بريخداص الله عليه وسلم كميه فرمايات. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. يعني واي بركسك باسخنان الدروغ مردم رامي خندانات. واي برؤوا واي برؤوا. والوازمت أز خديدا زيادة حذر كرت. شن بابن بريخداص الله عليه وسلم ميه فرمايات. لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تموت القلب یعنی زیاد نخندید زیرا خندیدن زیاد قلب را می راند هرگاه کسی با برادر دینی خود صحبت کند و به اطراف خود نگاه کند به معنای آن است که سخن امانت است چون پیامبر صلی الله علیه و سلام میفرماید اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانه بزرگان را در صحبت کردن باید جلو انداخت سخن باید به گونه باشد که شنیده شود نه زیاد بلند و نه زیاد کم باشد و با عبارت دیگر گونه باشد که همگی بشنون و از تصنع و غلوب دور باشد نباید سخن را قطع کرد همانند پیامبر صلی الله علیه و سلم که با مردم صحبت میکرد که ناگاه یک اعرابی وارد شد و پرسید قیامت کی می آید ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن را ادامه داد و وقتی که تمام شد گفت که جاست آن کسی که از قیامت میپرسید سپس جوابش را داد آرام صحبت کردن و عجله نکردن هنگام سخن گفتن به دلیل آنچه از پیامبر صلی الله علیه و salam روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و salam چنین صحبت میکرد. اگر کسی آن را می شمرد، حرفهایش قابلی شمارش بود پیامبر صلی الله علیه و سلم کلام را با عجله نمی گفت بلکه سخن را روشن و واضح می گفت به ای که اگر گوش میکردند، آن را حفظ می‌نمودند به هنگام صحبت کردن باید صدا را پایین آورد. خداوند جل جلالهو و فرماید من صوتک. از صدای خود بکاه و هرگز فریاد مزن. دوری از برخ الفاظ حرام مانند کلمات کفر آمیز سوگند به غیر خدا و گفتن ای مردم حلاک یافتن و سوگند به طلاق و دشنام دادن به زمانه و غیره. نباید شخص در مجلس خود را از همه برتر بداند، و فقط خود سخن بگوید نباید درباره خود با حالت مفاخر آمیز صحبت کرد بدلیل قول خداون جل جلالهو که می‌فرماید، فلا توزکو انفسکم پس خود ستایی و از گناه پاک و به آلایش معرفی نکنید و یا خود را بزرگ جلو دادن مانند گفتن من چینین می پیندارم مراعات کردن مشاعر دیگران ابن القیم رحمه الله درباره آنها چنین میگوید برخی از آنان با مردم اختلاط می کنند به خاطر پرستی و آنان کسانی هستند که عقل ثقیل و کینایی دارند نه آن طور صحبت می کنند که از آن استفاده ببری و نه آنقدر ساکت می شوند که از تو استفاده ببرند و حتی نفس خیش را نمی‌شناسان که آن را در جایگاه خود قرار بدهند هنگام زم کردن نباید به طور تعمیم آن را گفت باید در موارد زیر رعایت به خرج داد از سوال کردن زیاد باید پرهیز کرد زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید و یک ثلاثه و منها کثرت السؤال نباید در جواب دادن زیاد سریع بود باید کوشید نسبت به هر گناه خواه صغیره و یا کبیره اظهار نظر کرد نسبت به افراد سفیه و کم عقل ندان و کنش نشان نداد نباید سخنی را گفت که مناسب حال و مقام نباشد. نسبت به مسائلی که به او ارتباطی ندارد نباید دخالت کرد. به دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلام که فرماید من حسن اسلام المرء ترکه مالا لا یعنی يعني از جمله اخلاق زیبای انسان مسلمان این است در چیزی که به او ارتباطی ندارد دخالت نکند. نباید نزد کسی که علاقهی به گوش دادن ندارد صحبت کرد. نباید سخن را زیاد تکرار کرد. نباید نسبت به مخاطبین خود را بزرگ جلوه داد. باید مواظب بود نسبت به کسی که صحبت میکند بی‌احتیاطی نکنید. نباید حرفهای سخنگو را کم ارزش جلوه دهید. سعی نکنید حرفهای شخص سخنگو را تکمیل کنید. قبل از اتمام صحبت های او نباید بلند شد. سعی نکنید متکلم را تکذیب کنید. نباید در سخن گفتن با کودکان تقصیر و کوتاهی کرد. نباید در پخش کردن اخبار قبل از اثبات آن کوشید. نباید سخن دیگران را از دیگران شنید و نباید آن را بدون تحقیق جستجو پذیرفت نباید زیاد غلیظ صحبت کرد. خداوند جل جلال هم و همه فرماید: يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا ببندگان بگو سخنی بگویند که بهترین باشد. چرا که شیطان با وسیله سخنان ناموزون میانی آنها فتنه و فساد میکند. همیشه شیطان دشمن آشکار برای انسان بوده است. و در سوره بقره چنین آمده است. و قولو لین حسنه، یعنی و به مردم نیک بگویید. نباید هنگام عطاب و سرزنش زیاد شدت خرج داد. به هنگام حوار و گفتگو باید ادب گفتگو را رعایت کرد. و در آن نباید تقصیر نبود نباید هنگام صحبت کردن جوانی به عاطفی را فراموش کرد نباید محاور را مسخره نمود از مبارز طلبی و شکست دادن دیگران باید حذر کرد باید سعی نمود نام کسی که محاوره می کند فراموش نکرد نباید از مبدع ثابت و درست تنازل کرد نباید بر خطا و اشتباه اصرار نمود و از برگشت به حق همعار نداشته باشد نباید نسبت به موضوع حوار کمعلم و ناآگاه بود. نباید در ابتدای حوار احکام را صادر نمود. نباید هنگام حوار از موضوع اصلی دور شد. نباید حالت معارض و مخالفت به خود گرفت. نباید در مسائلی که هیچ ارزشی ندارن زیاد فرو رفت. نباید زیاد لومه و سرزنش کرد. نباید نزد مردم زیاد شکوا و گلایه کرد. در باره زنان نباید زیاد صحبت کرد نباید زیاد شوخی کرد باید از قسم خوردن پرهیز کرد خداون جل جلاله میفرماید فرماید وحفظو ایمانکم و سوگنده های خود را حفظ کنید و نشکنید نباید دنبال اشتباهات همنوشین خود را گرفت نباید از همنوشین خود اظهار ملالت نمود نباید همنوشینان خود را مکلف به خدمت خود نماید باید در مجلس از رفتارهای ناشایست پرهیز کرد. مانند توف انداختن در حضور آنان قهقه قه خندیدن بازی با سبیل و ریش. نباید در مجالس با منکرات سرو کل زد. نباید در مجالس لغ و شرکت کرد. و نباید با اهل آن رفتار نمود. نباید بگونه نشست که نشانده به ادبی باشد. نباید در وسط مجلس نشست. نباید به خود فشار آورد. تا فصاحت را در کلام بکار گیرد پیانبر صلی الله علیه و سلم می فرماید سیکون قوم یکلون بی السینتهم کما تأکل البقارت من الارض یعنی قوم, قوم خواهند آمد که با زبانهایشان آنچنان که گاوها چرند آن نیز سخن میگویند وقتی که نمی نقل قول را آنگونه که هست نقل کنی آن را تبلیغ نقل نکن لازم است که انسان تلاش و کوشش نماید که برادر دینی خود را تحت پوشش قرار دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید لا يستر عبد عبدن عبد فی الدنيا إلا ستره الله يوم القیامه یعنی هر کس ای را در دنیا تحت پوشش قرار دهد خداوند جل جلاله او را در قیامت تحت پوشش خود قرار می دهد. دی نباید دیگران را با القاب و نامهای زشت صدا زد. سن خداوند جل جلاله می فرماید و لا تنابزوا بالالقاب و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد نکنید و یا می فرماید ویل لکل همزه وای و الله و برای خرابکاری و فتنه انگیزی او کافی است هرگاه کسی با مردم صحبت کرد نباید به یکی از آنان رو کند و از دیگران رو برگرداند اگر کسی به طور اتفاقی هنگام سخن گفتن دوچار خطا و اشتباه شد اگر چی کفر هم باشد مؤاخذه نمیگردد و دلیلی آن روایت است که مسلم نقل کرده که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین میفرماید لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدی و انا اخطا من شدت الفرح یعنی خداوند بخاطر توبهی بندهش خیلی خوشحالتر می شود از کسی که در بیابانی وسیله سواری خود را گم می کند در حالی که آب و غزایش هم بر روی آن قرار دارد و از پیدا کردن آن نیز معیوس میگردد و از فرط ناراحتی به زیر درخت پناه میبرد و زیر سایه آن خوابش میبرد و در این میان بیدار می شود و می بیند که آن حیوان نزد او ایستاده است و بلا فاصله افسار آن را گرفته و از شدت خوشحالی می گوید پروردگارا تو عبد منی و من خدای تو و از شدت خوشحالی اشتباه می کند ونم. سوف يعيد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح Jazidu fala talta misrispondi ajisin, mupatterin fana که در آن از تحولات داغی اگفته شما را با خبر می سازیم. روز جمعه پانزده رمزار مطابق پنج اگست مقامات افغان گفتند که در نتیجه حملات روز جمعه در ولایت کنر یک پولیس افغان کشته شد گفته شده است که مجاهدین صبح روز جمعه بر پنج ولسوالی این ولایت حمله کردند زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر یک اعلامیه گفته است که این بزرگترین عملیات در ولایت کنر در جریان امسال می باشد قوای آیصاف تحت رهبری ناتو در افغانستان خبر می دیند که روز جمعه یک هلیکوپتر آنان در غرب افغانستان نشست استراری نمود در اعلامیه گفته شده است که تمام سرنشینان این هلیکوپتر از محل حادثه بیرون شدند که کدام تلفات به آنان رخ نداده است و همچنین گفته است که در وقت حادثه کدام فعالیت مجاهدین در منطقه وجود نداشت اما در مورد چگونگی نشست این هلیکوپتر معلومات داده نشده است با تاریخ مذکور انفجار بمی کنار جاده در شمال شهر بغداد پایتخت عراق چهار کشته به جا گذاشت گفته شده است که هدف این انفجار گزمه اردوی عراق در شهر منطقه دولاییه بود که در نتیجه آن چهار عسکر به شمول یک جگلن اردو کشته و چهار عسکری دیگر زخم برداشتند گفته شده که این حمله بعد از آن به وقوم پیوندد که حدود سیتن در اثر یک حمله به هدف نیروهای امنیتی عراق شدند. همچنان گفته شده است که حدودی 40 تن در سه روز اول ماه اگست کشته شده اند که در میان آنها سیتن تن از نیروهای امنیتی شامل می باشند روز جمعه 16 رمضان مطابق 6 اگست، شورای اجرایی افغانستان روز شنبه به وزارت دفاع و داخل افغانستان رای عدم اعتماد دادند. شورای ملی افغانستان با دلیل نگرانی در مورد به‌شمول حملات فرامرزی که پاکستان به انجام آن مقصر دانسته شده، این دو وزیر کابینه را استعفا کرده است. عبدالرحم ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان نتایج رایگیری را اعلان و هر دو وزیر یعت شده را فاقد صلاحیت عنوان کرد گفته شده است که در نتیجه رایگیری نمایندگان ولیسی جرگه بسم الله محمدی 90 رای تایید و 126 رای رد و عبدالرحیم وردک 72 رای تایید و 146 رای رد گرفته است با تاریخ مذکور مقامات محلی در بامیان میگویند که در نتیجه درگیری که در عصر روز شنبه میانی مجاهدین و نیروهای مشترک در ولسوالی شیبری ولایت بامیان با وقوع پیوست شش اسکار به شمول دو صرفازی بین المللی و چهار سربازی امنیتی ملی کشته و هفده تن دیگر شان زخم برداشتند. با تاریخی مذکور. در یک انفجار در نزدیک ساختمان پلیس نظامی در ترابلس مرکزی لیبیا حدی اقل یکتن زخمی شد. مقامات گفتن که مواد انفجاری در داخل یک موتر جابجا جا شده بود. هنوز روشن نیست که مسئولیت این انفجار کی بوده است. گفته شده است که از زمان سرنگونی سال گذشته این اولین است که چنین انفجاری در مرکز لیبیا رخ میدیهد. به تاریخ مذکور خبرگزاری دولتی کوریا شمالی خبر داده است که در سرازیری سیلاب در این کشور 169 نفر کشته و حدود 400 نفر دیگر ناپدید شدهاند. خبرگزاری مرکزی کوریا گفت که این سیلابها و باران‌های سنگین بیش از 2000 تن را به خانمان کرده و بیش از 65 هزار هکتار زمین زیراعتی را تخریب کرده است به تاریخ مذکور گزارش ها می رسانند که 48 شهروند ایرانی در دمشق مرکز سوریه را بوده شدند. با تاریخ مذکور گزارش ها می رساند که در نتیجه یک عملیات استشهادی در ولایت ابین یمن حداقل 45 تن کشته شدند والی ابین می گوید در این حادثه که در جریان یک مراسم جنازه رخ بهش بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند گفته شده است که شخص استشهادی رهبران قومی را که جهت سرکوبی مجاهدین همکاری میکردند هدف قرار دادند به اساس در میان کشته شده ها یک کماندان ملیشه که ضد مجاهدین بود نیز شامل است باز هم یمن گزارش ها که در نتجه بمباردومان تیاره بدون پیلوت امریکایی در شرقی یمن پنج تن از مجاهدین قایده به شهادت رسیدند مقامات می این حادثه در ولایت حضر صورت گرفته است با تاریخ مذکور مردان مسلح بر یک پوسته امنیتی میانی مصر و اسرائیل حمله نموده حدود 16 محافظ سرحدی را به قتل رساندند از یک مقام ارشد مصری نقل قول شده که مردان مسلح حمله کننده های جهادی بودند که از منطقه نوار غزه رخ نکرده بودند روز یک شنبه هفته رمضان مطابق 7 اگست ولیکنر میگوید که شب یک در حدود 60 راکت دیگر از سوی پاکستان بالای ولسوالی دانگام این پرتاب شده است به گفته مرتدین از چار ماه بدین سو بیش از هزار راکت بر مناطق مختلف این پرتاب شده است. با تاریخ مذکور، گزارش ها رساند که در نتیجه درگیری میانی مجاهدین و مرتدین در ولسوالی جبل سیراج ولایت هلمن دو تن از نیروهای امنیتی کشته و سی تن دیگرشان جراحت برداشتند. به تاریخ مذکور مقامات میگویند که درگیری‌های شدید در حلب دو مشهر بزرگ سوریه میان نیروهای وفادار به بشار اسد و مخالفین دولت ادامه دارد گزارش‌ها می‌رساند که در این درگیری‌ها نیروهای حکومتی به هدف سرکوبی مخالفان حکومت از سلاح سنگین و ها استفاده کنند به تاریخ مذکور یک مقام دولتی محلی در ترکیه میگوید که در درگیری میان اردو و شورشیان کرد 19 در جنوب شرق ترکیه شدند با تاریخی مذکور گزارش ها می رسانه که بمبی که در داخل یک موتر تعبیه شده بود روز یکشنبه در یک منطقه residential در شهر کویت منفجیر شد که در آن نفر کشته شدند با گفته حمید شکیل ماموری پلیس محل در امامگزاری بیشتر از ده نفری دیگر زخمی شدند روز دوشنبه 18 رمضان مطابقه 8 اگست خواندانی امنیتی ولسوالیه 400 ویلایتی غور کشته شد عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در یک رسانه کوفری گفته است که گل احمد فرمانده امنیتی 400 همراه با چند تن دیگر در اثر انفجار به دوشنبه جان باخت و سی تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. به تاریخ مذکور در یک رویداد دیگر در ولسوالی موسیقله ولایت هلمند 11 پلیس محلی به مجاهدین پیوستند. گفته شده است که افراد فراری سلاح و تجهیزات خود را با خود برده به تاریخ مذکور بر اساس گزارش‌ها حملات راکتی بر ولایت کنر هنوز هم ادامه دارد در رسانه‌ها گفته شده که شب دوشنبه حدود 60 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی‌های ناری، دانگام و سرکونی این ولایت اصابت نموده است به تاریخی مذکور در یک اعلامیه آمده است که ده ها اسکری بلژیکی افغانستان را ترک گفتند گفته شده که این گروه اسکری بلژیکی مسئولیت تضمین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده داشتند از افغانستان خارج شده‌اند و در همین روز مقامها در شمال غربی پاکستان میگویند که افراد مسلح روز دوشنبه بر یک موتر حامل تدارکات ناتو آتش گشوده و راننده آن را کشتند گفته شده که از آغاز بازگشایی های اکمالاتی ناتو در ماه گذشته این دومین مورد حمله بر های ناتو در ساحه جمرود منطقه قبایلی خیبر میباشد با تاریخی مذکور گزارش ها می رسانند که صدر سوریه با اردن فرار کرده است. رسانه های دولتی سوریه خبر داده که پس از نشر گزارش ها در مورد فرار ریاض حجاب او از وظیفهش منحص صدر زم برکینار شده است. سخنگوی ریاض حجاب اعلامیه‌ای صدر زمی سابق سوریه را به صورت مستقیم در تلویزیون الجزیره بخواند گرفت که می گوید من ریاض حجاب امروز برکیناری خود را از رژیم قاتل و تروریستی بشار الاسد اعلان می کنم و می با سفاف ها برای آزادی و بقا یک جا شدم. و در همین حال یک مقام ایالات متحده میگوید که پیوستن صدر اعظم سوریه و سایر وزرای ارشد آن کشور به مخالفین رژیم بشار الاسد گواهی این است که رژیم اسد در حال فروپاشی است و مخالفین بشار الاسد همچنان از گریز سه وزیر دیگر حکومت بشار الاسد خبر دادند با تاریخی مذکور یک حمله ظاهرن بمی میروزی دوشنبه شهر گرزنی مرکزی چیچینیارا بلرزه در آورد. این حمله بر منطقه اکتیبر رخ داد و تلفات را هم در بر اساس گزارش های ابتدایی دو تن از استشادیان این حمله را انجام دادن که داران تن کشته شدند. روزی سه شنبه 19 رمضان متابق نوی اگست. گزارش ها که در نتیجه انفجار یک ماین، صبح روز سه‌شنبه در ولسوالی پغمانی ولایت کابل هشت فرد ملکی کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند گفته شده که این حادثه در منطقه خالدره پغمان رخ داد که هدف اصلی این موائن موتری اردو ملی بود با تاریخ مذکور عبدالرحیم الرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان پس از چهل روز سه‌شنبه استعفاداد وردد در یک نشست در کابل استعفاش را اعلام کرد و گفت که در مورد تصمیم ولسی اجرګه مبنی بر سلب صلاحیت یوی نمی کند. با تاریخی مذکور در نتیجه ناامنی های روزی سه در افغانستان سه عسکر ناتو کشته شدن ناتو می گوید در یکی از این رویداد دو مردی که به یونیفرم پولیس ملبس بودن یک عسکر آمریکایی را به قتل رساندند. دو عسکر دیگر ناتو در نتیجه یک حمله مسلحانه و یک انفجار ماین کنار سرک در شرق و جنوب افغانستان کشته شدن روزی چهارشنبه 20 بیست مطابق متابقی ده اگست مسئولان امنیتی ولیت کاپیسا گفتند که شب سه شنبه یک موتر نیراهای ارده ملی در منطقه جمال آقای ولسوالی کوهستان این ولیت به یک ماین کنار سرک تصادم کرد. کماندان امنی ولیت کاپیسا روز سه شنبه در یک رسانه کفری گفت که در نتجه این انفجار یک سرباز ارده ملی کشته و سه سرباز دیگرشان جراحت برداشتند. با تاریخ مذکور، در نتیجه دو عملیات استشهادی همزمان در شهر اسدآباد ولایت کنر حداقل 3 تن از نیروهای بین الملل و یک فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند گفته شده که این حملات فیدایی پیش از 4 روز چهارشنبه که هدف آن یک گزمه‌ی نیروهای خارجی بود در شهر اسدآباد صورت گرفت زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگوید که در این عملیات 17 سرباز نیروهای خارجی کشته و 3 تن آنان نیز از بین رفتند با تاریخی مذکور مقامات امنیتی مصر میگویند پس از اینکه اسلام گرایان مزنون بر سه پست امنیتی در شبه جزیره سینا همزمان حمله کردند هلیکوپترهای جنگی بر آنها میزایل فایر کردند گفته شده که پس از جنگ مصر و اسرائیل در سال 1973 این نخستین بار است که ارده مصر در شبه جزیره سینا عملیات میکند مقامات میگویند که در این حمله بر پست‌های امنیتی یک افسر دو اسکر دو پلیس و یک غیر نظامی زخمی شدند به تاریخ مذکور استور محکمه پاکستان به صدر اعظم این کشور راجا پرویز اشرف دستور داده تا در 27 ماه اگست در محکمه حاضر شود. استور محکمه گفته که اشرف باید توضیح بدهد چرا علیه فساد اداری رئیس جمهور آصف علی زرداری اقدام نکرده است. روزی پنشنبه 21 رمضون مطابق یازده اگست گزارش ها که مردان مسلح رئیس شورای محلی و دو قریه‌دار ولسوالی گسفندی ولایت سریپول را به قتل رساندند. به تاریخ مذکور مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند که در یک درگیری میان مجاهدین و مرتدین در پلی عالم این ولایت چهارتن تن از مجاهدین به شهادت رسیدند. به تاریخ مذکور در نتیجه چندین انفجار در ولایت های قندهار هلمند لوگر و کنر در مدت 24 ساعت 4 تن از اساکیر ارده ملی کشته و ده تن دیگر جراحت برداشتند. با تاریخ مذکور، اساکیر پیمان اتلانتیک شمالی ناتو یک سرباز افغان را هنگام از پادر آوردن که میخواست بالای آنها در یک قریه در قرارگاهشان در شرق افغانستان حمله کند. سخنگوی ناتو گفته است، که هیچ سرباز ایتلاف در این حادیثه روز پنجشنبه در لغمان کشته نشده اما جراحت کسی را رد و یا تأیید نکرده است این دومین حمله توسط قوای افغان بالای قوای خارجی در یک هفته می باشد اخبار <تصفيق> Joo, meillä on täällä kaksi eri radioyhtyeen jäseniä. Joo, meillä on täällä kaksi eri radioyhtyeen jäseniä. Joo, meillä on täällä همي شمارة بخوضواني منان ميسپاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتكانو لا تفرح فقط جئنا بجيش احمد يكون للموت كما تفول شرب لا تفرح فقط جئنا بجيش احمد يكون للموت كما تفول شرب في ساح اقصى أصان الأبي آهيل شادة في ساح أقصان الأبي زمجر وأضرب مسمعي زر صاصر الشاش أبي زمجر وأضرب مسمعي زر الشاش أبي زمجر وأضرب مسمعي الشاش أبي زمجر رثاء